فصل یازده به همام رفتم کمی از گردی که مونیکا زیلوز برایم گذاشته بود توی وان ریختم و شیراب گرم را باز کردم حمام کردن تقریبا به خوبی خوابیدن یا آنکار است این حرف ماری است و من همیشه با کلمات ماری به آنکار فکر می کنم نمی توانستم تصور کنم که ماری حالا آنکار را با تصبح نر می کند تصورش برایم غیر ممکن بود همانطور که هیچ وقت به فکر به هم ریختن و تماشا کردن لباس های زیر ماری نیفتاده بودم من فقط می توانستم تصور کنم که با تصبفنر منچ بازی کند و همین هم مرا خشمگین می کرد ماری نمی تواند بدون اینکه خودش و خیانتگار و فاحشه بداند کارهایی که با من می کرد را با تصبفنر هم بکند او حتی نمی تواند روی نان تصبفنر بمالد تصور اینکه ماری سیگار تسوپنر را زیر سیگاری بردارد و آن را بکشد می می‌کند و این واقعیت که تسوپنر سیگاری نیست یا اینکه با ماری فقط شطرنج بازی میکند هم دلداریم هم نمی‌دهد. بعدا بالاخره باید با هم کاری می‌کردند، با هم میرقصیدند یا ورق بازی می‌کردند یا یکی از آنها برای دیگری کتاب میخواند یا درباره هوا و پول صحبت می‌کردند. ماری فقط میتوانست برای او آشپزی کند و به یاد من نیفتد و کارش را خیانت و فاحشگی نداند چون برای من بهندرت آشپزی میکرد بنم میخواست به ویل تلفن کنم ولی هنوز خیلی زود بود تصمیم داشتم ساعت دو و نیمه بعد از نیمه شب او را از رخت خواب بیرون بکشم و با او بحث مفصلی درباره هنر بکنم ساعت هشت شب برای تلفن کردن به او و پرسیدن اینکه چه اصولی را بهخورد ماری داده است و ازتسبفنر چقدر حق دلالی گرفته وقت مناسبی نبود میخواستم از او بپرسم آیا صبح برای این کار یک صلیب قرن سیزدهمی یا یک مجسمه ی مریم قرن چهاردهم به او داده است همچنین به این فکر بودم به چه ترتیب زومرویلد رو به قطر برسانم یک هنرشناس را باید با یک اثر هنری به قطر رساند که پس از مرگ هم از جنایت بزرگی که نسبت به آن اثر هنری شده رنج ببرد یک مجسمه مریم برای این کار خوب نیست چون ارزش زیادی ندارد و زیاد از حد محکم است وانگهی ممکن است موقع مرگ به خودش دلداری بدهد که مجسمه عیبی نکرده است تابلو نقاشی هم به اندازه کافی سنگین نیست شاید بشود از قابش استفاده کرد ولی در این صورت رنج جنایت هنری در کار نخواهد بود شاید بتوان رنگ های تابلو را از روی بوم تراشید و او را با پارچش خفه کرد یا دار زد. البته این روش خوبی برای قتل نیست ولی برای قتل یک هنرشناس بدک نیست در زم فرستادن هیکل سالم و گردن کلفتی مثل او به دیار ادم نواید کار آسانی باشد زومرویلد بلند گامت و لاغر با شخصیتی احترام انگیز خوشقلب و کوه نورد است و از اینکه در دو جنگ جهانی شرکت کرده و مدال نقره ورزشی دارد به خودش میبارد به طور خلاصه دشمن سرسخت و زورمندی است من باید یک اثر هنری که از فلز باشد پیدا کنم از برونز یا تلاش هم از مرمر ولی وقت ندارم به رم بروم و آن را از موزه واتیکان بدزدم همچنان که آب در وانه همم میریخت به یاد بلوتفرت افتادم یکی از اعضای مهم گروه که او را دوبار دیده بودم سیاست مداری مانند کینکل بود ولی مخالف او که با پشتوانه دیگر و از محیطی دیگر آمده بود برای اوت صبحنر همان وضعی را داشت که فرد بویل برای کینکل داشت. یک نوع حامی و مشاور روح. تلفن کردن به بلوترت مثل این بود که از دیوارهای اتاق کمک بخواهم. تنها چیزی که می توانست او را تکانی بدهد مجسمه های مریم کینکل بود. او با لحنی آنها را با مجسمه های خودش مقایسه می کرد که از آن شدت تنفری که نسبت به کینکل داشت پیدا بود. بلوترت؟ رئیس جایی بود که کینکل دلش میخواست رئیس آنجا بشود آنها از دوران مدرسه به هم تو میگفتن هر دوباری که بلوترت را دیدم یک که خوردم او قدی متوسط داشت و موهایش بور بود و مثل بیست 25 ساله ها به نظر میرسید وقتی کسی به اون نگاه می کرد پوزخند تلخی صورتش را می و وقتی میخواست شروع به حرف زدن کند نیم دقیقه ای دندان گروچه میکرد و از هر چهار ای که بر زبان میآورد دوتایش صدر اعظم و کاتولیک بود و تازه آن وقت بود که متوجه می شدی با بیش از پنجاه سال سن به دانش آموز پیر و فرطوطی می ماند که پشت دیپلم مانده باشد و دیده ای العاده بود در هم بر هم حرف و بعد از چند کلمه زبانش به لکنت می‌افتاد و می‌گفت کاکا کا کاکا یا ست سس سس سس تا اینکه بالاخره موفق میشد. باقی کلمه یعنی تولیک یا اعظم رو هم بر زبان بیاورد دلم به حالش میسوخت ماری میگفت به طرز عجیبی باهوش است ولی من دلیلی برای این ادعا پیدا نکردم و تنها جایی که دیدم او بیش از بیست کلمه حرف بزند وقتی بود که در یکی از جلسات گروه درباره مسئله اعدام بحث میکرد. او بدون قید شرط طرفدار اعدام بود و برایم عجیب بود که هیچ تلاشی نمیکرد تا به هر بهانه عقیده‌اش را توجیه کند. وقتی از اعدام حرف میزد، صورتش از شادی برق میزد و دوباره به لکنت میافتاد. و طوری صد صد, صد, صد, صد, صد, صد می کرد که گویی با هر صدر گردن یکی را میزند گاهی به صورت من خیره میشد و هر بار مثل اینکه جمله باور نکردنی است را در گلویش خفه میکرد. نمیتوانست جلوی سرتکان دادنش را بگیرد. نظرم کسی که کاتولیک نبود برایش موجودیت نداشت. من همیشه فکر می کردم اگر مجازات ادام دوباره معمول شود او سعی خواهد کرد تمام غیر کاتولیک ها را دار بزند او همسر فرزند و یک تلفن داشت ترجیح میدادم که یک بار دیگر به مادرم تلفن کنم آخ، وقتی به ماری فکر می کردم، یاد لوتررت افتادم او حتما به خانه ماری رفت آمد داشت چون از اعضای گروه و اتحادیه‌ای که تسوبفنر سرکرده یان بود به حساب میآمد تصور اینکه او جزو میهمانان دائمی ماری باشد برایم وحشتناک بود من ماری را دوست دارم و کلمات پیشاهنگ آبانش که من باید به راهی بروم که می‌بایست بروم مرا به یاد بدرود مسیحیان قدیم می‌انداخت که در راه ایمان و اعتقاد خود را به دهان حیوانات درنده میانداختند به مونیکا زیلفز هم فکر می‌کردم می دانستم روزی محبت و مهربانیش شامل حال من خواهد شد. مانیکا بسیار زیبا و مهربان بود و به نظرم حتی از ماری هم کمتر به گروه میخورد. چه وقتی که در آشپزخانه مشغول بود؟ من یکبار در آشپزخانه برای درست کردن ساندویچ به او کمک کردم و چه وقتی که می خندید یا میرقصید و چه وقتی که نقاشی می کرد حتی اگر تابلوهایش را دوست نداشتم همیشه همه چیزش طبیعی و جزوی جدا نشدنی از او بود. ولی زومرویلد آن در گوشش از رسالت و نزایران خوانده بود که او تقریبا فقط تصویر مریم را می کشید. سعی می این کار را از سرش بیاندازم. اگر آدم نقاش خوبی باشد و ایمان هم داشته باشد باز کارش خوب از آب در نمیآید. این کار شایسته بچه ها و راهبه های متودع نیست که به هیچ وجه خود را هنرمند نمیدانند. با خودم فکر می کنم که آیا موفق خواهم شد این کار را از سر مونیکا بیاندازم. او مشوقی کسی نبود از و هنوز جوان است. بیست و دو یا سه سال دارد و مطمئنا هنوز باکره است این واقعیت مرا به وحشت میاندازد اینکه کاتولیکها برای من نقش زیگفرید را در مقابل مونیکا در نظر گرفتن وحشتناک است شاید هم چند سالی با هم زندگی میکردیم تا زمانی که حفظ اصول تأثیر کند به من عشق میورزید و آن وقت بود که به بن برمیگشت و با ونسورن عروسی میکرد از این افکار شرم زده شدم آنها را رها کردم مونیکا دوست داشتنی تر از آن بود که در موردش چنین افکاری به ذهنم راه بدم. اگر روزی تصمیم بگیرم به مونیکا نزدیک شوم، باید قبل از هر چیز قונاش کنم که دور زمر ویلد را خط بکشد. زمر ویلد این موجود رزل شباهت زیادی به پدرم دارد. با این تفاوت که پدرم به سرکیسه کردن مردم قانه است ولی زمرویلد بیشتر شبیه به مدیر کنسرت، مدیر یک کارخانه تولید کفش، آوازخوانی با سرووز مرتب یا شاید سردبیر یک مجله مد است. او هر یک chamber در کلیسای ساندکوربیان و می کند ماری دوباره مرا آنجا کشاند این نمایش تر از آن است که مؤسسه زومر ویلد اجازه اجرای آن را بدهد ترجیح می‌دم به جای گوش دادن به این اراجیف آثار ریلکه، هوفمانستال و نیومن را بخوانم تا اینکه نشخار معجونی از آنها را بخوردم دهند با شنیدن وضع او پیشانی‌ام را می می‌کند اعصاب نباتی من نمی‌تواند بعضی از اشکال غیرطبیعی بودن را تحمل کند جملات و پر پرزرق و برق او درباره هستی وجود و حرکت پویای جهان مرا می ترساند ترجیح می که کشیشی چاق و بیخبر از همه جا حقایق غیر قابل لمس این مذهب را از پشت میز خطابش جار بزند ولی خیال نکند که حرفایش گوهربار و مستدل است ماری از اینکه که زمر بر من اثر نمی کرد ناراحت بود ناراحت کننده تر از همه این بود که پس از وعز به کافه نزدیک کلیسا رفتیم کافه پر بود از انسانهای هنری که از پای زومر ویل آمده بودند بعد خود او هم آمد و عده دورش جمع شدند ما هم به ناچار وارد جمع شدیم او چرندیاتی را که بالای منبر گفته بود دو سه چهار بار دیگر نشخار کرد یک هنرپیش زیبا و جوان با گیسوان بلند طلایی به سان فرشته وارد شد و در تب و تاب این بود که پای زومرویلد را ببوسد و گمان نمی‌کنم زومرویلد قصد داشت جلوی او را بگیرد ماری زیر گوشم زمزمه کرد او تا سه چهارم کاتولیک شده است شیراب را بستم ربت و شامر و لباس های زیر را در آوردم و به گوشه ای پرتاب کردم میخواستم توی وان بروم که تلفن زنگ زد تنها یک نفر بود که میتوانست تلفن را اینطور محکم و مردانه به صدا درآورد نمایندم تسونرر او چنان نزدی که تلفن می میشود و خود را به گوشی می میچسواند که من همیشه میترسم نکند آب دهانش به صورتم بپرد او هر وقت میخواهد صمیمیت و مهربانیش را به من نشان بدهد صحبتش را با شما دیروز عالی بودید شروع می کند این حرف را بدون این که واقعا بداند من عالی بودم یا نمیزنم و وقتی میخاهد خسمانه صحبت کند، این اینطور شروع می کند گوش کنید آقای شنیر شما که چاپلین نیستید البته منظورش این نیست که من دلغکی به خوبی چاپلین نیستم بلكه میخواهد بگوید به اندازه کافی معروف نیستم که بتوانم بر خلاف میل او هر کاری دلم خواست بکنم ولی امروز خسمانه یا مثل وقتی که برنامه ای را رد می کنم از به آخر رسیدن دنیا حرف نخواهد زد او حتی مرا به مبتلا بودن به هیستری هم متهم نخواهد کرد شاید برنامههایی که قرار بود در آفنباخ بامبرگ و نورنبرگ اجرا کنم لغو کرده بودند و تسونرر میخواست مخارجی را که روی دستش گذاشته بودم برایم حساب کند تلفن همین طور بی‌وقفه و مردانه زنگ میزد و من به این فکر بودم که بالشی روی آن بیاندازم ولی حوله حمام را تنم کردم. به اتاق نشیمن رفتم و پای تلفن ایستادم. نظرم کارفرماها اعصاب فولادین و موقعیت اقتصادی خوبی دارند. واژهای چون حساسیت روح هنرمند برای آنها مانند سهام کارخانه آبجوسازی است. به نظر آنها هر گونه بحث جدی درباره هنر و هنرمند وقت تلف کردن است. آنها به خوبی می که یک هنرمند بی وجدان هزار بار بیشتر از یک مدیر برنامه باوجدان وجدان دارد اما آنها سلاحی دارند که کمتر کسی توان ایستادن در برابر آن را دارد آنها بهتر از هر کسی می دانند که یک هنرمند هیچ کاری به غیر از پیشه خود بلد نیست یا نقاشی میکند یا به عنوان دلغک از شهری به شهر دیگر می رود یا آواز میخواند یا از سنگ مجسمه می تراشد. به نظر آنها هنرمند مثل است که جز ابراز محبت کردن به مردان کاری از او بر و در این راه به هر کار غیر اخلاقی تن در نتیجه زن و هنرمند بهترین گزینه برای استثمارند و مدیران برنامه هم در این میان نقش دلال محبت را بازی میکنند. شکل زنگ زدن تلفن شکل زنگ زدن یک دلال محبت بود؟ سهنارر بیشک از طریق کاسترت با خبر شده بود که من کی از بخوم حرکت کردم و دقیقا می میدانست که در خانه خودم هستم. بنده حوله حمام را گره زدم و گوشی تلفن را برداشتم و بلافاصله بوی گند آبجویی که خورده بود به دماغم خورد. گفت لعنت به تو شنیر چرا اینقدر دیر گوشی را برداشتی گفتم می خواستم دوش بگیرم این هم مقایره قرارداد ماست گفت این شوخی به خنده قبل از بالای دار رفتن میماند گفتم تناب کجاست من راویزان کرده اند؟ گفت دست از این نمادسازی ها بردار برویم سر اصل مطلب گفتم من نمادسازی را شروع نکردم گفت چه فرقی میکند کی با چی شروع کرده است به نظر میرسد تصمیم گرفته ای به شکلی هنری دست به خودکاشی بزنی به آرامی گفتم آقای عزیز می میتوانم خواهش کنم گوشی را کمی عقب تر ببرید بوی آبجوی نفستان جای نفس هم می کند. میکند در حالی که سرخ و سفید میشد با لحن ارازل و باش گفت: دلقک دست بردار." بعد خندید و گفت: <تصفيق> مثلی که هنوز چیزی از وقاحتت کم نشده. درباره چی حرف میزادی؟" گفتم: "درباره هنر. ولی اگر ممکن است خواهش می کنم درباره کاسبی صحبت کنیم." گفت: "در این صورت دیگر حرفی نداریم با هم بزنیم. گوش کن. من به این سادگی ها از تو ناامید نمی شوم. حرفم را میفهمی؟" از شدت تعجب نتوانستم جواب بدم. ادامه داد. شش ماه تو را از دور خارج میکنیم بعد دوباره شروع میکنیم در این دوره هم تقویتت میکنیم تا کارت دوباره رونق بگیرد امیدوارم حرفای آن مردک در بخوم ناراحتت نکرده باشد گفتم چرا او به اختلاف قیمت بلیط درجه یک و 2 و یک بطری عرق سرم کلاه گذاشته گفت حماقت کردی که با پایین آوردن دستمز موافقت کردیم قرار داد است و عدم موفقیت تو هم به خاطر زمین خوردنت بود گفتم تسونرر واقعا تا این حد بشر دوست شده ای؟ یا اینکه گفت مزخرف نگو من دوستت دارم اگر تا به حال متوجه نشده ای از آنی هستی که من تصور می کردم. از آن گذشته هنوز می شود از تو پول درآورد این ارخوری بچه گانه را هم بگذار کنار ازوا بود بچهگان تنها اصطلاح صحیح آن بود گفتم ولی این کار به من کمک می کند. گفت چه کمکی گفتم؟ کمک روحی؟ گفت مزخرف است <تصفيق> روحت را رو از بازی بگذار کنار ما می توانیم از ماینس به خاطر لقب قرارداد شکایت کنیم برنده هم می شویم ولی من این کار را صلاح نمی دانم شش ماه استراحت کن آن وقت دوباره در قلعه افتخار خواهی بود پرسیدم در این مدت با کدام پول زندگی کنم؟ گفت می توانی از پدرتان چیزی بیرون بکشی؟ گفتم اگر نتوانستم چه گفت آن وقت زنی را پیدا کن که در این مدت خرجت را بدهد گفتم: ولی من ترجیح میدم در دهات و شهرهای کوچک مسخرگی کنم دوچرخه دارم گفت: اشتباه می کنی. در دهات و شهرهای هم مردم روزنامه میخوانند وانگهی در حال حاضر من نمیتوانم حتی در کلوب نوجوانان هم با شبی 20 مارک برای تو کار جور کنم. پرسیدم، امتحان کردی؟ گفت: بله، تمام روز به خاطر تو این طرف و آن طرف تلفن کردم فایده ندارد. برای مردم هیچ چیز ناراحت کننده تر از دلغکی که احساس همدردی میانگیزت نیست مثل این است که پیش خدمت کافه روی صندلی چرخدار برایت آب جو بیاورد امید وای نداشته باش گفتم خودت چی او ساکت ماند گفتم منظورم این است که تو هم خیال میکنی بعد از چشما میشود دوباره شروع کرد گفت شاید عقبات باشد ولی این تنها راه باقی مانده است شاید بهتر باشد یک سال صبر کنیم گفتم یک سال؟ می یک سال چقدر است؟ گفت سیصد و شست و پنج روز و دوباره صورتش را به طرف من برگرداند و بوی آب جوی نفسش حالم را به هم زد گفتم با یک اسم دیگر، یک دماغ دیگر، برنامه دیگر شاید بشود کاری کرد مثلا گیتار بزنم و آواز بخوانم و کمی تردستی کنم گفت مزخرف است خواندنت آدم را به گریه میاندازد و تردستیت هم از روی تفنن است مزحکه میشوی دست از مزخرف گفتم بردار تو استعداد یک دلغک نسبتا خوب شاید حتی دلغک خوب شدن را داری و تا وقتی سه ماه تمام روزی هشت ساعت تمرین نکردهای اسم مرا نیاور بعد سه ماه من نگاهی به برنامههای جدید یا قدیمت میاندازم تا آن وقت تمرین کن و دست از این عرقخوری لعنتی بردار ساکت ماندم صدای پک زدنش را به سیگار میشنیدم. گفت دوباره دختری وفادار پیدا کن مثل کسی که تا چندی پیش با تو همسفر بود پرسیدم وفادار گفت بله هر چیزی غیر از آن مزخرف است خیال هم نکن بدون من می توانی جلت را از آب بیرون بکشی یا اینکه در انجمن های بیکلاس نمایش بدهیم شاید بتوانی سه هفته در جشن کارمندان آتش نشانی دلغک بازی کنی و کلاه در دست پولی جمع کنی اما اگر بفهمم که این کار را کرده ای، تمام کمک هایم را قطبی کنم گفتم سگ گفت بله من وفادارترین سگی هستم که میتوانی پیدا کنی. اگر شما میخواهی در خیابان نمایش بدهی دو ماه بیشتر دوام نمی آوری من این شغل را خوب میشناسم گوش میدهی چه میگویم؟ ساکت آرام گفت. متوجه شدی گفتم بله گفت جنیر من دوستت دارم با تو خوب کار کردم وگرنه برای حرف زدن با تو این همه پول تلفن نمیدادم گفتم ساعت از هفت گذشته و تلفن ارزانتر شده پولش تقریبا دو مارک می شود گفت بله شاید هم سه مارک ولی در حال حاضر هیچ کارگزاری حاضر نیست برای تو همین پول را هم خرچ کند همانطور که گفتم سه ماه صبر کن و در این مدت حداقل شش برنامه حسابی تمرین کن تا آنجا که میشود از برنامه قدیمی هم استفاده کن در ضمن به پدر پیر خصیصت هم فشار بیاور که کمکت کند گوشی را زمین گذاشت من هنوز گوشی در دست داشتم به بوغ بوغ آن گوش می دادم تسونرر چند بار سرم کلا گذاشته بود ولی هیچ وقت به من دروغ نگفته بود زمانی که اجرای هر شبم 250 مارک ارزش داشت قراردادهای صد های 180 مارکی با من امضا کرد و شاید حسابی از این راه فایده برده بود وقتی گوشی را گذاشتم متوجه شدم او تنها کسی است که دوست داشتم بیشتر با او صحبت کنم ولی او باید راهی بهتر از شش ماه صبر کردن جلوی پایم می میگذاشت شاید یک گروه آرتیستی وجود داشته باشد که به شخصی مثل من احتیاج داشته باشد وزنم زیاد نبود در ارتفاع دچار سرگیجه نمیشدم و میتوانستم پس از کمی تمرین با آنها آکروبات بازی کنم یا با یک دلغک دیگر روی های کوچک همکاری کنم ماری همیشه می گفت من به یک همبازی احتیاج دارم تا برنامهام تا این حد خسته کننده نشود تسونرر مسلما تمام امکانات را در نظر نگرفته بود تصمیم گرفتم بعدا به او تلفن کنم به همام رفتم موله حمام را بیرون آوردم و روی لباس دیگر پرد کردم و داخل وان شدم. یک حمام گرم تقریبا به خوبی خوابیدن است. همیشه حتی زمانی که پول کافی نداشتیم، اتاقی میگرفتیم که حمام داشته باشد. ماری همیشه تقصیر این اصراف را به گردن وضع خانوادگی من میانداخت، ولی این حرف درست نبود. توی خانه ما در مورد آب گرم هم مثل چیزهای دیگر خصت به خرج می دادند. همیشه می توانستیم دوش آب سرد بگیریم ولی حمام گرم در خانه ما هم اصراف به حساب می آمد. حتی آنا هم که گاهی چشمش را هم میگذاشت در این مورد سخت گیری می‌کرد و پیدا بود که در آی آر ای آنا حمام آب گرم گناه کبیره محسوب می‌شد و مجازاتش مرگ بود. در وان حمام هم بود ماری را احساس می‌کنم. وقتی تو ایوان بودم ماری که روی تخت راست کشیده بود برایم کتاب می‌خوند. یک بار از روی تورات تمام داستان سلیمان و ملکه سبا و بار دیگر داستان جنگ ماکابایوس را برایم خواند گاهی هم کتاب فرشته به سوی خانه بنگر توماس ولف را برایم خواند حالا تنها و غریب توی این وان لعنتی مسیرنگ دراز کشیده بودم دیوارهای حمام کاشی سیاه رنگ بود ولی خود وان جا صابونی دوش و و حالت به رنگ مسی من به صدای ماری احتیاج دارم وقتی خوب فکر می کنم می بینم که ماری حتی موقع انجیل خواندن با تسپرنر هم باید خودش را خواهن و فاحشه بداند او باید به یاد آن هتل در دوسل بیفتد که داستان سلیمان و ملکه سبا را آنقدر برایم خواند تا من از خستگی در وان به خواب رفتم فرش های سبز و هتل سیاه و صدای ماری بعد برایم یک سیگار آتش زد و آورد و من او را بوسیدم با بدنی پوشیده از کف توی واندراز کشیده بودم و به ماری فکر میکردم او بدون اینکه به من فکر کند نمیتوانست مقابل چشم تسوفنر با او کاری بکند ماری حتی نمیتوانست جلوی او در خمیر دندان را ببندد چقدر با هم صبحانه خورده بودیم خسته بودیم و صبحانه ساده بود یا حال بودیم و صبحانه مفصل صبح خیلی زود یا نزدیک ظهر با مربای زیاد یا بدون مربا تصور اینکه که ماری با در همان ساعت صبحانه میخورد و بعد تسوپنر سوار ماشین می و به دفتر کاتولیکیش می رود احساس فردی متدین به من می دهد دعا می کردم که او هیچ وقت با تسوپنر صبحانه نخورد سعی می کردم تسوپنر را مجسم کنم با موهای قهوهی، پوست روشن و قامت راست او یک نمونه بارز از کاتولیک های آلمان بود ولی جدیتر از آنها آنطور که کینکل میگفت او آن وسط ایستاده بود ولی بیشتر به راست تمایل داشت تا چپ این راست و چپ بودن اغلب موضوع اصلی صحبتهایشان بود اگر بخوام صادقانه اضافت کنم باید تصفن رو هم به چهار کاتولیک دیگر اضافه کنم پاپ انا علگ ماری، گرگوری و تسوپنر مطمئنا گذشت از عشقی که به ماری داشت اینکه تمام تلاشش را برای رهایی ماری از یک زندگی گناهکارانه کرده بود غیر قابل انکار بود اینطور به نظر می رسید که دست در دست آن ها زیاد اهمیتی نداشت بعدها در این باره با ماری صحبت کردم ماری صرخ شد ولی به طرز خوشایندی گفت در این دوستی مسائل زیادی مؤثر بودند پدر هر دوشان از طرف نازیها تحت تعقیب بودند همینطور کاتولیک بودنشان آنها را به هم نزدیک کرده و اینکه خودش و رفتارش می‌دانی من هنوز هم از او خوشم میآید زیرا آب وان را باز کردم تا مقداری از آب سرد شده برود و به جای آن آب گرم را باز کردم و دوباره کمی از گرد توی وان ریختم به پدرم فکر می کردم که در کارخانه‌ای که این گرد را میسازد شریک بود فرقی نمیکنم در چه بخرم، سیگار، صابون، کاغذ، بستنی چوبی و یا سوسیس پدرم در کارخانه یان شریک است. ح میزنم او در دو سانتونیم خمیدندانیم که گاهی میزنم شریک باشد. و با تمام این احوال در خانه حق نداشتیم درباره پول صحبت کنیم. وقتی آنا می‌خواست با مادرم حساب مخارج را برسد و یا دفترچه حسابش را به من نشان بدهد مادرم هر بار میگفت درباره پول صحبت کردن واقعا نفرت انگیز است <تصفح> گاهی هم که مجبور می‌شد حرف او را ادا کند سعی می‌کرد آن را خفیفتر تلفظ کند دما خیلی کم پول تو جیبی می‌دادند خوشبختانه خویشاوندان زیادی داشتیم و وقتی همه جمع می‌شدند پنجاه تا 60 امه و خاله و عمو بودند و چون خصت مادرمان میان اقوام و مثل بود گاه سکهای کف دستمان می‌گذاشتند. مادرم از اشراف و از خانواده فنهوگین بود و هنوز هم پدرم خود را مانند دامادی حس میکند که افتخار دامادی به او داده باشند هرچند که پدر زنش از اشراف نبود و طلر نامیده میشد و فقط مادر زنش از خانواده فنهوگین بود آلمانی ها امروز حتی بیشتر از سال 1910 به اشرافیت اهمیت می‌دهند. حتی مردمی که خود را روشن فکر باهوش می‌دانند. برای دوستی و آشنایی با این طبقه سر و دست می‌شکنند. می‌بایست کمیته مرکزی مادرم را متوجه مسئله می‌کردم. این یک مسئله نژادی است. حتی مرد عاقلی مثل پدر بزرگم نمی‌تواند از نقل این داستان خودداری کند که نزدیک بود خانواده شنیر در تابستان سال 1918 عنوان اشرافی بگیرد. یعنی باید گفت تقریبا رسمی شده بود ولی بعد در لحظه حساس قیصر فرار کرد و نتوانست فرمان را امضا کند. از قرار معلوم قیصر گرفتاری های دیگری هم داشت البته اگر بشود کارهایش را گرفتاری نامید هنوز پس از نیم قهرن این داستان نزدیک بودن اشرافیت خانواده شنیر در هر موقعیتی نقل می شود پدرم همیشه میگوید فرمان را رو روی میز اعلیحضرت پیدا کرده بودند من تعجب می کنم چرا یک نفر را پیش پادشاه به دور نفرستاده بودند تا آن را امضا کند من اگر جای آنها بودم یک قاصد روی عصب می میشاندم و به آنجا می فرستادم تا داستان همانطور که در خور و شایسته این خانواده بود تمام شود. تویوان به یاد ماری افتادم. وقتی چمدان را باز میکرد جلوی آینه می ایستاد، دستکشهایش را بیرون میآورد. دستش را روی گیسوانش سووانش میکشید. ها را از گنج لباس بیرون می آورد. لباس ها به آنها می و دوباره توی گنجا ویزان می کرد به یاد صدای کشیده شدن غلاب جارختی ها روی لوله برنجی داخل گنجه می افتدم. بعد صدای آرام کفش هایش را می و یادم میآمد که چطور شیشه ها و قوطی ها و لوازم آرایشش را روی تاچه شیشه ای بالای دستشیه می گذاشت های بزرگ کرم یا شیشه های کوچک لاکناخان قوطی پودر و صدای برخورد فلز های ماتیک با شیشه ناگهان متوجه شدم هایم سرازیر شدن و کشف فیزیکی عجیبی کردم هایم سرد بود قبل از آن همیشه به نظر گرم میآمدند در چند ماه گذشته چند این بار در حال مستی گریه کرده بودم و همیشه عشقهایم گرم بودند. همچنین به هنریته پدرم ولی او که تازه کاتولیک شده بود فکر کردم بعضی که هنوز تلفن نکرده بود